اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تبارک الذي بیده الملک و هو على كل شيء قدیر به نام خداوند بخشنده بخشایشگر پر و زوال ناپذیر است کسی که حکومت جهان هستی به دست اوست و او بر هر چیز تواناست. الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ آن کس که مرگ و حیات را آفرید تا شما را بیازماید که کدام یک از شما بهتر عمل می‌کنید. و او شكرد ناپذیر و بخشنده است الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمان من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور همان کسی که هفت آسمان را بر فراز یکدیگر آفرید در آفرینش خداوند رحمان هیچ تزاد و عیبی نمی بینی. بار دیگر نگاه کن آیا هیچ شکاف و خللی مشاهده می کنی؟ ثُم مَرُجِعِ الْبَصَرَ كَرْوَتَيْنِ يَنْقَلِبِ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا يَنْقَلِبِ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خاسئا وهو حسير. بار دیگر نگاه کن رانجام چشمانت به سوی تو باز می‌گردد در حالی که خسته و ناتوان است ولا قد زیننا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعدنا لهم عذاب السعير ما افسمان پایین را با چراغهای فروزانی زینت بخشیدیم و آنها شهابها را تیرهایی برای شیاطین قرار دادیم و برای آنان عذاب آتش فروزان فراخم ساختیم وللذین لیلذین بربی معذاب جهنم و بیس المصیر و برای کسانی که به پروردگارشان کافر شدند عذاب جهنم است و بد فرجامی است القوا فیها سمعوا لها, سمعو لها تفور هنگامی که در آن افکند شوند صدای وحشتناکی از آن میشنوند و این در حالی است که پیوسته می جوشد تكاد تميز من الغیر كلما ألقي فيها فوج سالهم خزنتها سالهم خزنتها الم ياتكم نذير نفس دو دوزخ از شدت غضب پاره پاره شود هر زمان که گروهی در آن می میشوند نگهبانان دوزخ از آنها می‌پرسند مگر بین دهنده الهی به سراغ شما نیامد قالوا بلا قد جاءنا نذیر فكذبنا وقلنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن انتم ان انتم الا في ضلال كبير میگویند چرا بیم دهنده به سراغ ما آمد ولی ما او را تکذیب کردیم و گفتیم خداوند هرگز چیزی نازل نکرده و شما در گمراهی بزرگی هستید و قالو لو نسمع او نعقل ما کنن فی اصحاب السعیر و میگویند اگر ما گوش شنوا داشتیم یا تعقل میکردیم در میان دوزخیان نبودیم فاعترفو بذنبیم فسحقا لی اینجاست که به گناه خود اعتراف میکنند دور باشند دوزخیان از رحمت خدا این الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ لهم مغفرة واجر كبير اما کسانی که از پروردگارشان در نهان میترسند مسلما آمرزش و پاداش بزرگی دارند باسر قولكم اوجهرو به انه عليم بذات الصدور گفتار خود را پنهان کنید یا آشکار او به آن که در سینه هاست آگاه است الا علم من خلق وهو اللطيف الخبير. آیا آن کسی که موجودات را آفریده از حال آنها آگاه نیست در حالی که او با خبر و آگاه است هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. و ایلیه نشور او است که زمین را برای شما رام کرد شانه های آن راه بروید و از روزی های خداوند بخورید و بازگشت و اجتماع همه به سوی اوست امینتم من فی السماء این یخسیف بکم الارض فا ایلیه آیا خود را از عذاب کسی که حاکم بر آسمان است در امان می دانید که دستور دهد زمین بشکافد و شما را فرو برد و به لرزش خود ادامه دهد ام امینتم من فی السماء این يرسل عليكم حاصبا فست <سؤال> از عذاب خداوند آسمان در امان می دانید که توند بادی پر از سنگ ریزه بر شما فرستد و به زودی خواهید دانست های من چگونه است و لقد كذب من فكيف كان کسانی که پیش از آنان بودند آیات الهی را تکذیب کردند اما ببین مجازات من چگونه بود أولم یروا الی الطیر فوقهم صافات ویقبض ما یمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شیء بصیر آیا به پرندگانی که بالای سرشان است و گاه بالهای خود را گسترده و گاه جمع میکنند، نگاه نکردند جز خداوند رحمان کسی آنها را بر فراز آسمان نگه نمی دارد چرا که او به هر چیز بیناست اما هذا الذي هو جند لهم ينصرهم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور آیا این کسی که لشکر شماست میتواند شما را در برابر خداوند یاری دهد ولی کافران تنها گرفتار فریبند من هذا الذي یا این ونفور یا آن کسی که شما را روزی میدهد اگر روزیش را باز دارد. چه کسی می تواند نیاز شما را تأمین کند ولی آنها در سر کشی و فرار از حقیقت لجاجت می برزند افمن یمشی مكبا على وجهه اهدا،, اهدا ام من یمشی سوياً على صراط مستقیم آیا کسی که به رو افتاده حرکت میکند به هدایت نزدیکتر است یا کسی که راست خامد در صراط مستقیم گام برمیدارد قل هوالذی انشاکم وجعللكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشکرون بگو او کسی است که شما را آفرید و برای شما گوش و چشم و قلب قرار داد اما کم تر سپاسگزاری می کنید هو فی و بگو او کسی است که شما را در زمین آفرید و به سوی او محشور می شوید و یقولون متى هذا الوعد این کنتم صادقین آنها میگویند اگر راست میگویید این وعده قیامت چه زمانیست؟ قل انما العلم عند الله و انما ان نذیر مبین بگو علم آن تنها نزد خداست و من فقط بیم دهنده آشکاری هستم فلما رأوه زلفت سیعت وجوه الذین كفروا و هذا و قیل هادا الذی کنتم به تدعون هنگامی که آن وعده الهی را از نزدیک میبینند صورت کافران زشت و سیاه میگردد و به آنها گفته میشود این همان چیزی است که تقاضای آن را داشتید. قل ارایتم ان اهلكني الله ومن معی او رحمنا او رحمنا فمن یجیر الكافرین من عذاب اليم بگو به من خبر دهید اگر خداوند مرا و تمام کسانی را که با من هستند حلاک کند یا مورد ترهم قرار دهد چه کسی کافران را از عذاب دردناک پناه می دهد قل هو الرحمن آمنا نبی و علیه توکلنا علمون من هو فی ضلال مبین بگو او خداوند رحمان است ما به او ایمان آورده و بر او توکل کرده ایم و به زودی چه کسی در گمراهی آشکار است قل ارائیتم این اصبح ماؤکم غورا فمن فمن یأتیکم بما این معین قل ارأیتم اصبح ماءكم غورا فمن یأتیكم بماء معین بگو به من خبر دهید اگر آبهای سرزمین شما در زمین فرو رود چه کسی میتواند آب جاری و گوارا در دسترس شما قرار دهد ده